بسم الله الرحمن الرحیم بنامه خداوند بخشنده یه محبان وصاف فات خففا صفگان با آنها که صفت شدند اززاد و زجر. هم آنها که قلیه نحجه می کنند و باست می دارند فتالیات ذکره با آنها که پی در پی ذکر الاسی را تلا بست میکنند این ایلهکم لواحد مسلما معبود شما یکتاس ابدو السماوات والارض وما بینهما و رب المشار پربارکار آسمان ها بسمین با انچی در دمیان و دا پربارکاره این جن ما ما آسمان پایین را با اختصار کن کردیم کتیم. و من كل شیطان مارد. و آن را از هر شیطان خبیسی حفظ نمودیم. لا یسمعون نمی توانند به سخنان فرشتگان آدم فالا گوش فرا دهند از هر سو هدف تیرها قرار میگیرند آنها به شدت به عقب رانده میشوند و برای آنان اصاب داکم است مگر آنها که در لحظه کوتا برای استراق سمع به آسمان نسید شوند اشهاب ساقب آنها را تعقید می کند فستفه اهم اجب زغلقا ام من خلقنا انا خلقنا هم من صین لازد از آنها بکر آیا آفرینش آنان تختره یا آفرینش فرشتگان ما آنها را از گل چسبنده آفری دیم بل عجبت و یز خرو از این کار آنها تعجب می ولی آنها مسخره میکنند و, و هنگامی که به آنها تذکر داده شود هرگز متذکرنمیشوند و شود و هنگامی که معجزه را ببینند دیگران را به دعوت میکنند إلا سحر فقط و گоворه‌ان هذا این لذت‌های و می‌گویند، این سحر آشکاری. از ما و نه آنها می آیا هنگامی که ما مردیم و خاک و سخن شدیم؟ بار دیگر برانگی خواهیم شد یا فدران خود فین ما باز می کردند بگو آره همه شما زندنی شدید در حالی که خار و کوچک خواهید بود فَإِنَّمَا اَلْيَ زَجْرَتُمْ وَاحِدَتُمْ فَإِذَاهُمْ يَنْبُرُونَ تنها یک سیحه عظیم باقی می شود ناغهان همه از قبلها برمی خیتند و نگاه می کنند يَا وَيْلَمَا و می گویند عجبای بر ما این روز هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. عارف. إنهم أن روز الجدعين كشما أنزل تفسيد مِكَتِيهِ. الذين ظلموا وأذوادهم وما كانوا يعبدون من دون الله. بر این هنگام به فرشتگان دستور داده می شود ظالمان و هم آنها و آنچه را جز خدا می پرستیدند جمع کنید و به سوی راه دوزخ که دایت شامین ملکید آنها را متوقف سازید که باز یا باز پرسی شود مَا لا شما چرا از همیاری نمی تلبید؟ الْمُمُ ولی آنها در آن تسلیم خدرت خدا بنده وَاقُبَلَ بَعْدُهُمْ بعد در این حال آنها رو به یکدیگر کرده و هم سآل انكم عن و قول انكم كنتم گروهی میگویان از طریق خیر و نیکی وارد شدید قال لم تكونوا مؤمنين شما خودتان اهل ایمان نبودید تفسیر ما چی وما كان لنا عليكم من سلطان بل کنتم قوما صاغیم ماهی الکونه سلطه بر شما نداشتیم بلکه شما خود قوم تغییان گرد بودیم فحق قول ردنا انا اکنون فرمان خدا بر همه ما مسلم شد و همه گی از عذاب او می چشید. آره ما شما را گمراه کردیم گونه که خود گمراه بودیم همه ی آنها در امروز در عذاب الهی مشترک همک ما این با مجرمان رفتار می کنیم اینا هم اذا لهم لا اله الا چرا که وقتی با آنها؟ لا اله الا الله می شود استكبار می انا آله لشاعر می گفتن میشد استکبار میکردن و يا میگفتند گفتند آیا ما خدایان خود را به خاطر شاعر دیوانه رها کنیم بل جاء الحق و چنین او حق آورده و پیانبران پیشین را تفسیر کردهاند اما شما مستقبران کور دل به طور مسلم عذاب دردناک الهی را خواهید چشید وَمَا تُجِزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَنَوْنَ و اعمالی که انجام می دادید جزا دادن نمی شدید إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ مُحْلَقِينَ جزب لهم برای آنها روزی معین و ریجهی وهم او وسیه و هم مکرمون به پای گوناگون پر ارزش با آنها مورد احترامند این جنات در باغ های پر نعمت بهشت على صور متقاعدی بر ساخت ها رو بر روی یک دیگر تکیه دادند علیه مِنْ مَعِينٍ گدا گدا انحاء قدا حوله لبری از شراب سحور را میگسانند بینا شرابی که سفید و درخشنده و لذت بخش برای نوشندگان لا بها غول ولا هم عنها شرابی که نه در آن موجه فساد عقل است، نه موجب مستی می‌کشد. و عندهم قاصرات آنها همسرانی است که جود به شهران خود عشق نمیورزند و چشماوی درشت و دیبا دارند. کأنهم لبن مدنون گوی از لطافت و سفیدی همچون تخم مردهای هستند که در زیر بال و پر مرد پنهان موندند و بعضی رو به بعضی دیگر کرده سآل می کنند اینی یک از آنها میگوید من هم می داشتم. که پیوسته می گفت آیا براستی تو این سخن را باور کرده‌ای؟ که وقتی ما مردیم و خاک و استخوان شدیم بار دیگر زنده می شویم و داده خواهیم شد سپس می آیا شما می توانید از او خبری بگیرید اینجاست که به جستجو برمیخیزد و نگاهی می کند ناگهان او را در وسط جهنم میبیند بیند. می گوید خدا سوگند چیز نمانده بود که مرا نیز به هلاکت بکشاند. ولولا نعمت من نعمت پروردگارم نبود من نیز از احزاب شدگان در دوزخ خودم افما ای دوستان آیا ما هرگز نمیرین الا با جز همان مرگ اول مرگ به سراغ ما نخواهد آمد و ما هرگز مجازات نخواهیم شد راستی این دی بزرگی. لی برای مثلا این پاداش آش 15 رن باوجت بکوشم. این بهتر یا درخت زکون جعلنا ما آن را موضع درد و رنج دالمان قرار دادیم بیگمان درختی که از قعر جهنم می رو قلوا تَأَنَّهُ آن الشَّيْطَنُ شکوفه به ما ندید که لهاج شیطان فَإِنَّهُ لَآتِيُونَ ندان شکن خود را از آن پر میکنن. ثُمَّ إن لَهُمْ عَلَيْهَا جووب من سپس روی آن آب داغ متعدل می روشن نوم الحي سپس آنها بس جنمما إ چرا که آنها پدران خود را گمراه یافتن؟ با این حال با سرعت و دنبال آنان می تواند قبل از آنها اکثر پیشن یا نی گمراه شدند ولقد اَوْسَلْنَا فِيهِمْ ما در میان آنها انذار کنندگانی فرستا دیم فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَتُ پس انذار شوندگان چگونه بود؟ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ مگر بندگان مفلس ما نوح ما را ندا کرد و چه خوب اجابت کننده هستی. و و اهله من العظيم، او به خاندانش را از امدوه بزار رهایی بخشیدی. ویا علنا ذر بیتهو الباقیان با حرزم دانش را باق من دكان ذوق جسمین کرستاتی. ودرختنا علیه نیک آورا در میان امت بعد باقی گستاتی. السلام علی نوحی العالین سلام على نوح في در نو در میان جهانیان ان كذلك نذل المحسنين ما این گونه نیکو کاران را پاداش می‌دهیم انه من عبادنا المؤمنين چرا که او از بندگان با ایمان ما بود ثم اورقنا الاقرين تفسی کرم را این من شعته لرهیم و از پیربان او ابراهیم بود اذ جاء ربه بقلب سلیم بخاطر بیاور هنگامی را با که با قلب سلیم و پیشگاه پروردگارش آمد هنگامي كبا فدر با قومش گاف انها چشيزا كمي پرستید ائف كان آلهة دون الله تريدون او يا غير الخدا بس راض ان معبودان الدروهين لذيب فما ظننكم برد العالمين شما درباره باره ی پروتگار عالمیان چکمان میبرید؟ سپس او نگاهی به ستارگان افکن. و گفت من بیمارم, بیمارم, بیمارم آنها از او روی برطافت و به او پشت کردند و به سرعت دور شدند فراغ الی آلهتهم فقال الا تأخونون او وارد بخانه شد مخفيانه نگاهی به معبودان آنها کرد و از روی گفت چرا از این غذاها نمی خورید ما لکم لا تنطقون اصلا چرا سخن نمی گوید فراغ علیه هم سپس ضربه محکم با دست راست و با توجه بر پیکر آنها فرو يذمون آنها با سرعت به سراغ او آمدن قال ما ابراهیم گفت: آیا چیزی را می پرستید که با دست خود می والله خلقكم وما تعمرون ضاین که خداوند هم شما را آفریده و هم بت‌هایی را في که می‌سازید قال بنو له بني لم فالكوه في الجحيم آنها گفتند بنای مرتفع برای او بسازید و او را در جهنمی از آفش بیفکنید كيداً آنها پره برای نابودی ابراهیم ریخته بودند ولی ما آنها را پست مخلوب ساختیم و قال اینی ذاهبون الى ربی تیهدین و گفت من به سوی پروردگارم می روم او مرا هدایت خواهد کرد قَدْ بِهَرْنِ مِنَ الصَّالِحِينَ فرورتگارا من از فرزندان صالح ببخش ما او را به نوجبان بردبار و فر استقامت بشارت دادیم فلما بلغ معه از قال يا بني ندمي انني انبحك فمنذ ماذا ترى قال يا ابتي عن ما تؤمر تسجد لي شاء الله من القادرين خندمي كبؤ بمقام السعي وبوشش قال فرزندم من در خواب دیدم که باید تو را کنم بنکر نظر تو چی؟ گفت پدرم هرچه دستور داری اجرا کن به خواست خدا مرا از صابران خواهی یا فلم ما و تن هنگامی که هر دو تسلیم به آماده شدن و ابراهیم جبین او را به نهاد و نادیناه ای ابراهیم او را ندا دادیم که ای ابراهیم قرصد تقسر روئیه انا کذار که نجدی در خواب معمولیت یافتی انجام دادیم ما این گونه را جزا می این عددلله امتحان مهم و آشکاری و نه او ما را صدای او کردیم با بالاعیرین و نام نیک او را در اومسال بعد باقی سلام علی ابراهیم. سلام بر ابراهیم باد کذالک نجیب این کونانی کوکاران را پاداش می دهی. او اسبندگان با ایمان ما وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين ما أرى بإسحاق في عمد رسالة بشارة التوتين وباوتنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريته ما محسن وظالم لنفسه مبين ما بأو و اسحاق برکت نهادیم و از دودمان آنها اثراد نیکوکار کار وجود وجود آمدن و افرادی که آشکارا به خود ستم کردن ما به موسا به هارون نعمت بخشیدیم و نسجیناهما و قومهما من الكرض العظيم آنها و قومشن را از اندوه بزرگ نجات دادید و نسرناهم فکانوهم الغالبین و آنها را یاری کردید تا بر دشمنان خود پیروز شدند و آتیناهم الكتاب المستبين. ما به آنها کتاب آف دادیم و هدینا هو المستقیم. آنها را برای راست تدوجت کنیم. و ترطنا با خیر آنها را در اقوام بعد باقی گذاشتیم. سلام سلام بر موسی و هارون. این نه که دالک ما این گونه نیکوکران را حداش می دهیم. این همه من عبادین المؤمنین آنها از بندگان مؤمن ما بودند. و این نیا سلم المرسلین و ایلیاس از رسولان ما بود از اطال لقومی بخاطر بیا بر هنگامی که با قومش گاف آیا تقوی پیشنه می کنید اتدعون بعلا و تذعون احسن القالقین آیا بطه بعلا را می خانید و بهترین خالدها را رها میسازید؟ الله ربكم ورب بم که پروردگار شما و پروردگار نیاکان شماست ذاما اما آنها او را تكذیب کردند ولی مسلما همگی در دادگاه عدل علهی احزار می شدن مگر بندگان مفلس خدا ما نام اینه که او را در میان امت بعد برقرار صافتیم سلام, سلام بر الیاسین این که ذلک نجیب المسلمین ما این گونه نیکوکاران را تاداش می‌گیم. ایننهو من عبادنا المؤمنین او از بندگان المؤمنین مافو. و ایننهو قل من المُسلِمین لود از رسولان مافو. اذ و اجمعين بخاطر دیو بر زمانی را که او به خاندانش را نجات همگی دادی الا ازوزا فی زنی که در میان آن قوم باقی ماند ثم بقچه را سپس نابود کردید وَإِنَّكُمْ لَتَمُهُرُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَشُمَا قَيْبَسَةَ صَابْگاهًا از کنار آنها عبور می کنید وَحَشَبَالْگاهًی اوکیان نمی اندیشید وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَيُونَسَ از رسولان ما بود آباق إلى الفل خاطر زمانی را که بسوي کشتی مملو فرا کرد. فتاه من و با آنها قرعه افکند و مخبوب شد. او الحوت و هو دریا و مافی عظیم او را بالای در حالی که مستحق ملامت بود. و اگر او از کنند گام نبود. تا رود قیامت در شکم ماهیم میماند فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَائِ وَهُوَ او را در یک ترزمین خوشک خوالی از کیاه افکان در خوالی بیمار بی موت بود فَنَبَذْنَا عَلَيْهِ و بر او بطه از کدور رویانی دیل. و او, الى مئة الف او يزيدون و او را به سوی جمعیت یک هزار نفری یا بیشتر استادیان فآمنون فمتعلناهم الى حین پس آنها ایمان آوردند و تا مدت معلومی آنان را از مواهب زندگی بحرمن کافید أَتَظُنُّونَ از آنها الْبَنَاتُ آیا پروردگار تو دخترانی دارد و پسران از آن آنها أم خَلَقْنَا آیا ما فرشتگان را به صورت دختران آفریدیم و آنها ناظر بودن؟ الا انهم من افكهم ليقولون, ليقولون ولد الله وانهم لكاذبون بدون با این تهمت بزرگشان میگوین خروان فرسنج آورده ولی انخا قطعن دروغ میگوین قفل بناتی علی آیا دختران را بر پسران ترجیح داده؟ آلکم کیف شما چگونه حکم میکنید؟ آیا متذکر نمی شدید؟ سلطان آیا شما دلیل رفشانی در این باره دارید؟ فأتو بکتابكم این کنتم را بیا اگر راست نیکوید و جعلو بینه و ولقد علمت الجنة إنهم آنها میان او و جن نسبت قائل شدند در حالی که جنیان به خوبی میدانستند که این بدپرستان در دادگاه الهی احضار می‌شوند سبحان الله عما خداوند از توصیفی که آنها می کنند إلا عباد الله مگر بندگان مخلص خدا فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ شما با آنچی پرستش میکنید. کنید مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِمِينَ هرگز نمی تبانید کسی را با آن تریب دهید اِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ مگر آنها که می در او تشد و زخم بسوزند و ما مننا الا لهم مقام معلوم هر یک از ما مقام معلومی داریم و اننا لنحنفون بما همگی برای اطاعت فرمان خداپند فان به صف وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ما همگی تصبیح او می کودیم وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ آنها پیواسته می گفتند لَوَ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا من الأولين. اگر یکی از کتب پیشینیان نفس ما بود لکن عِبَادَ اللَّهِ المخلصين ما از بندگان مخلط خدا بودید اکفرون به فسوفی آنها به آن کافر شدند ولی بزودی نتیجه کار خود را خواهند داند در ای قطعی ما برای بندگان مرسل ما از قبل مسلم شدند این لهم المنصورون که بیگمان من آنها یاری نشبند و این جندنا لهم الغالبون و بیگمان من لشکر ما پیروزند فدول عنهم از آنها روی بگردان تا زمان معینی و اَذْهْرُ آنها را بنگرد اما به‌وودی آنها می‌بینند اَسمِعوا آیا آنها برای عذاب ما عجله می‌کنند اما هنگامی که عذاب ما در تحن خانه هایشان فرو دادید بدی خواهند داشت از آنها روی بگردان تا زمان معین و بس کارشان را ببین آنها می بسودی می بینامد. سبحان ربک رب العزت عما یقی کون منظف پر برگار از توقیف های کانخام می کنمد. و سلام علی المرسلی و سلام بر رسولانم و الحمد لله رب العالمين. به هم بسته توجه مخصوص خداوندی که پرورشگاهی آدمیانه.